کلمیز بی ارادت آشق بی است و رونده بی معرفت بیپر بی پر و عالم بی عمل درخت بی بر و زاهد بی ام خانه بی در.